السلام و علیکم نور الله الذی لا یطفأ اینجا روشن میشه چرا شر دعای شروعش ابتداش اینه اللهم رب نور القدیم النور القدیم نور, نور الله نور الله لدی لا یطفا کجاست باز باید رفت بیشتر کاوش کرد تا گم شده را پیدا کرد سیر نهایی به سوره صف تمام بشه اونجا که خدا می فرماید یریدونه ليؤت ثو نور الله ابصاهم ولله موتن نوريه ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بعد رجوع میشه به تفسیر اما تفسیری که مفسرش جعفر ابن محمده تفسیری که مفسرش لسان الله ناطقه او بیان میکند که این نور اللهی که یریدون الیطف او نور با و افاههن حجت ابن الحسن الاسگریز. او حقیقت نوری که لا معرفت بنورانیت اینه اون که وظیفه فرد فرد شماست اینه که هم خودتون و هم دیگران را به این مقام سوق بدهید و شب و روز در جستجوی او باشید شاید از اون برق نور به مغز ما بتابه و یک تحولی در وجود ما پیدا بشه تو که هستی؟ و چه موجودی هستی که ما هر چه بخواهیم بگوییم فقط می اظهار کنیم که کومیت فکر لنگه و بیان الکنه تعبیری که خدا از امام زمان می کند دو تعبیره اضافه این نور الله لا دیلا به کلمه الله اشاره است از این که امام زمان مظهر اسم از ظاهر و اضافه به زمیر که در آخر آگه است و الله متم اشاره به اینه که مظهر اسم باطنه اون وقت در امام زمان ظهور و بتون هر دو جمعه قیب و شهود هر دو جمعه این دوران دورانیست که جهت نورهی باید تمام بشه اون دورانی که تکیه به خانه کعبه بده اونجا ظهور نوراللهی حضرت پیدا میشه این امام زمان و ما این که به او ظلم کردیم نه او را شناختیم نه رعایت ادب او را کردیم اگر هر روز صبح با این حضور و با این دقت دعا را بخوانید و در اطراف معارف دعا تعمل کنید و از وقتی که به میدان کار قدم میگذارید تا آخر در این حد باشه که به قدری که به فکر خودتون هستید به فکر او باشید همین اندازه بسته اگر چنین بشه خواهید دید چه خواهد شد ولی هنوز به اینجا نرسیده اگر چنینه ما چه انتظار داریم اول باید از ظلم به امام زمان پاکیزه شد قدم اول اینه که در هر مجلسی در هر محفلی در هر درسی در هر بحثی بیاد یاد او باشید فقط خدا و امام زمان خراشی رو بل کنید به متن بپردازید بدبختی ها بیشارگی ها فردن و اجتماعند بر سر این است که به اندازهی که من و تو به فکر نام و نشان خودمون هستیم نه به فکر نام خدایم و نه به فکر نشان خدا نشان خدا امروز ولی یه کسی که بین سما و عرض سبب متصل اونه کسی که حرف رفت بین خالق و مخلوق اونه چنین کسی نباید این چنین محجور باشه مجالت شما، منابر شما باید ابتداعش خدا باشد اختتامش امام زمان باشد شاید در لطفی به رویش من و شما باز بشود